انفسکم و احلیکم نارا در جلد پنجم کافی که میشه فروع کافی تو روزه کافی صفحه شست و دو حدیث شماره یک این آیه آیه شش از سوره مبارکه تحریمه قو انفسکم و احلیکم نارا میگه وقتی این آیه نازل شد یکی از اصحاب پیغمبر که اسمش هم در حدیث اومده زار زار شروع کرد به گریه کردن اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله بعد از نزول این آیه فلانی حالش خیلی بعد شده حضرت برای دلجویی و مثلا حالشو پرسیدن یا خودشون تشبا بردن یا ایشونو خواستن پرمودن چی شده تو رو ارز کرد یا رسول الله من از عهده نفس خودم بر نمیام. حالا در این آیه منو نسبت به اهلی هم خانوادم و اطراپیانم مسئول کرده. من گریم اینه که چیکار کنم؟ قو انفسکم و اهلی کم نارا. نگه دارید قو از وقایه خود را حبس کردن و نگه داشتن. نگه دارید خودتونو و خانوادهتون را از ناره جهنم و عذاب اخروی یعنی از آلوده شدن از بیچاره شدن زمان پیغمبره از یاران پیغمبره کسی که با نزول یه آیه اونقدر به گریه میفته که پیغمبر میفرماد بریم تسلیش بدیم خب معلوم این آدم معمولی نیست این کسی است که آیه دلشو داره تکون میده ولی من بعد صد تا آیه بخونن تکون نمیخورم تا حدیث میخونن ای خیالم نیست این همه در گوش من از زندگی معصومین گفتن من غرق کارای خودم هستم خب نشون میدسن دل من نرم نیست قسیل قلب شدم این چه دلیه که یه آیه نازل شده اینجور زار زار اشک میریزه و حالش منقلب شده انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت غلوبهم شده و اذا طلیت علیهم زادتهم ایمانا این معلومه که فرد فرد عادی نباد باشه چرا این فرد وقتی آیه میگه قو انفسکم و اهلیکم به گریه افتاده که من چکار کنم من از عهدهٔ خودم برنمیام من گرفتار نفس امارهٔ خودم هستم چه بکنم حضرت حدیث اینه داره حضرت فرمودن که فلانی خداوند میفرماید اون چرا که به خودت میگی به خانواده بگو اون چه که خودت رو از اون باز میداری به خانواده باز بدار تکلیف ساقطه عمل وظیفه خودشونه ولی نسبت به خودت باد عامل باشی طرف میگه راحت شدم اما بحث من اینجا نسبت به انفسکمه. یعنی اگر انفسکم و اهلیکم در رابطه با خانواده وظیفه گفتن داریم، وظیفه مجبور کردن به عمل نداریم، اما خودمون رو وظیفه مجبور کردن به عمل داریم، باید خودمون رو بادار کنیم که عمل کنیم.